خانه پدری، مادر پیری که می توانی هنوز او را در آغوش بگیری و موهای سفیدش را نوازش کنی. هنوز هم عارف سلطان با ایال اولادهایش در زیر زمین خانه زندگی میکردند مادرم بعد از انقلاب به مشهد آمده بود و برای همیشه ماندگار شده بود. می گفت می خواهد در کنار آقا بمیرد. از قضیه بچه دار شدن من خوشحال بود. می گفت بلاخره آقا دعایم را استجابت کرد. تمام مدت آن سیزده روز زد که چرا نوه را نیاوردی تا ببینم. نمیدانست آن نوه برای من در آن زمان وجود ندارد. عاقبت یک شب گفت. طلاقش نمی دادی. می آوردیش اینجا پیش خودم. همانجا و همان لحظه بود که سرم را روی زانوهایش گذاشتم. اما نتوانستم گریه کنم. و همان شب بود که بوی تلیاک افغانی را از حیات خانه شنیدم و شب بعد کنار عارف سلطان نشستم و غمهایم را دود کردم. از تهران گریخته بودم. از مرزیه، از اسمایل، از فامیل هایی که بیشترشان در تهران بودند و چند نفری در مشهد. خودم را به مادرم رسانده بودم تا مثل یک کودک در پناه او قرار بگیرم. شبها به حرم می آمدم به توصیه مادرم. در یکی از همین شبها بود که در حلقه ی زنها نیم رو خطورا دیدم. سیل جمعیت مرا با خود برد. وقتی به خود آمدم خودم را زیر دست و پای جمعیت دیدم. آنقدر نیم روخی که دیده بودم واقعی بود که چند شب متوالی در همان ساعت به هرم می آمدم اما دیگر هرگز نیم نیمروخ را ندیدم میبینی تو همه جا بودی؟ حتی آنجا که نباید باشی؟ جایی که فکر می سبب شود تو را و گذشتم را فراموش کنم خود به می تبدیل شده شبها تا دیر وقت در حرم و صحن قدم میزدم و به زنهایی که فکر میکردم میتوانند تو باشند خیره میشدم یکی از همان شبها به جرم مزاحمت برای خانومی که چادرش را کشیده بودم و گل صدایش کرده بودم به دفتر حراست حرم برده شدم میبینی آدمها همیشه نمیتوانند متهم کننده باشند من مدت ها بود در مقام متهم ظاهر می شدم آنجا بود که احساس کردم گم شده ای دارم وقتی به آنها که استنتاقم می کردند گفتم گم شده ای دارم در حالتی شهودی دریافتم از وقتی خودم را شناختم در پی گم شده ای بودم که شکل مشخصی نداشته است در آن زمان گم من تو بودی گرچه بعدها نه خیلی بعد، شاید چند ماه بعد، وقتی اسماعیل اولین قدمهایش را برداشت و بابا صدایم کرد، زندگی رویه دیگری از خود نشانم داد. تو بودی، بقل گوشم، توی دانشگاه تهران، هر آنکه اراده می‌کردم می‌توانستم می, می به دیدنت بیایم، چنان که یک بار آمدم. یک هفته تمام وقت گذاشتم تا روزی در حیات دانشکده با دوستانت دیدم. تو ای به آن گل که من می شناختم شباهت نداشتی کلمه شناختن کلمه مناسبی نیست باید بگویم تو ای به آن گل که من انتظار دیدنش را داشتم شباهت نداشتی فکر می کردم ترا گوشهی تنها خواهم یافت که زانوی غم بقل گرفته ای و سالها پیر شده ای یاد از سکم مرده و قم گینی. اما در آن روز تو یک دختر شاد دانشجو بودی به نظرم زیباتر از قبل بودی و چیزی مثل یک سرخوشی دخترانه در حرکاتت موج میزد کتابهایت را دو دستی به سینه چسبانده بودی گردی صورتت را بیرون انداخته بودی و به چیزی که یکی از آن دو دختر همراهت میگفت قاه قاه میخندیدی خندیدن تو آن طرز گرفتن کتاب هایت، آن صورت گرد و زیبا، آن سهل انگاری و سرخوشی، موجی از تنفر در من ایجاد کرد. شاید کار برده واژه تنفر هم در اینجا درست نباشد. به نظرم در آن لحظات نوعی سرخوردگی در من ایجاد شد. حتی لحظاتی فکر کردم آنچه بر سر تو آمده حقت بوده. و از اینکه چنین موقعیتی را برای تو فراهم کرده بودم پشیمان بودم. همانجا بود که تصمیم گرفتم تو را که لایق دوست داشتن نبودی فراموش کنم. به خاطر تو خانواده‌ام را ترک کرده بودم. به خاطر تو با عارف سلطان همراه شده بودم. و به خاطر تو اسماعیل را نادیده میگرفتم. آیا تو ارزش این تخریب را داشتی؟ میبینی ما با توقعاتمان زندگی میکنیم. ما با ذهنیات و پیش داوری من با دنیا و آدم ها برخورد میکنیم. تو در آن روز، ذهنیت مرا در هم ریختی. چطور میتوان استگم شده من باشی، در حالی که دیگران گل نبودی، تو آدم جدیدی بودی که من نمیخواستمش، زیرا نمیفهمیدمش، زیرا مطابق انتظاراتم نبود. وقتی از دانشگاه بیرون آمدم، تصمیم گرفتم خودم را به خاطر کنش های نابجا و نسنجیده تنبیه کنم. به خیابان ولی رفتم. یک پیراهن خواب صورتی خوشرنگ برای مرزی خریدم و یک هواپیمای جنگی برای اسماعیل. در تمام طول راه سوت می زدم. فکر می کنم بهانه ای را که قرار بود دوباره به زندگی وصلم کند پیدا کرده بودم. شاید هم این بهانه را ساخته بودم. خوشحالی تو؟ و سرزنده بودن تو و ای برای فراموش کردن تو بود. وقتی به خانه رسیدم، متوجه شدم اسماعیل به نحوه حیرت آوری شبیه مرزی است. حتی یک خط از خطوط چهرگی تو در صورت او ندیدم. میبینی، آدم هر طور بخواهد میتواند دنیا را ببیند. تا سال بعد وقتی در خیابان نادری احواز زنی را دیدم که به نحوی حیرت انگیزی به تو شبیه بود. نه تنها خودم را متقاعد کردم که آن زن تو نیستی بلکه خودم را ملامت کردم که همچنان تو را در وجود و چهره دیگران به یاد می‌آورم می‌خواستم تو را در درونم بکشم به نظرم این پافشاری برای فراموش کردن تو باعث شده بود چیز غیرقابل فهم در درونم اتفاق بیفتد درست به همان اندازه که برای فراموش کردن ات تلاش می‌کردم به همان اندازه تو در وجودم حضور داشتی انگار بخشی از وجودم بودی که سر به سر بخش دیگر وجودم میگذاشت فکر می کنم آن زندگی کوتاه مدت در گوران به یک زندگی درونی تبدیل شده بود تردید شوخ تبعی سرزندگی بازیگوشی تو به درون من منتقل شده بود شگفتانگیز بود من تو را در درون خودم کشته بودم اما از خاکستر وجودت ای در درونم بالیده بود. آن قضی که درخت تناوری شده بود. حالا نه تنها تو در درونم که در اعمال و کردارم نیز حضور داشتی. همه این تغییر و تحول را به پای وجود اسماعیل میگذاشتند همین نگاه بازی گوشانه به زندگی باعث شد فاصله هم با مرزی روز به روز بیشتر شود. مرزی خوشک از آن بود که بعضی سهلنگاری های من را نادیده بگیرد. وقتی یک روز همکلاسی کلاسی زمانهای خیلی دورم یعنی خانوم مهندس رزوی را که اتفاقی در خیابان دیده بودم به خانه آوردم مرزی از شدت تعجب و تعصب نزدی بود پس بیفتد و زمانی که فهمید این زن مرتب و منظم و آرایش کرده بیوه یک پزشک پولدار است، چنان کلی در درآورد که بخش بازیگوش وجودم نیست به وحشت افتاد. خانم رزوی شاگرد اول کلاس بود و اگر نبود ترس از بدرم که مرزیه را از بچگی برایم زیر سر گذاشته بود، ای بسا از او خواستگاری هم می کردم. بعد از ماجرای تو دوباره به سازمان کشاورزی برگشتم. جایی که فکر میکردم اگرچه شهرت و قدرت برایم نمی آورد، دست کم دردسر ساز هم نیست. اگرچه تا پایان جنگ بیشتر در جبه ها بودم تا در اداره، حالا فکر میکردم آدم وقتی در جای خودش نباشد سرگردان است. بعد از انقلاب، برای آبادانی روستاها تهران را رو ترک کرده بودم. فکر میکردم به عنوان مهندس کشاورزی، کارهای زیادی میتوانم انجام بدم. اما تحولات اجتماعی همه چیز را به هم ریخته بود. وقتی وارد بخش کوچکی مثل گوران شدم، تنها چیزی که به کارم نیامد مدرک کارشناسی کشاورزیم بود. تا به خود بیایم در مستر اموری بودم که ضرورتشان از آب، خاک، چاه، قنات و هر چیزی که به کشاورزی مربوط میشد بیشتر بود. این واژه ضرورت هم از آن راههای استعاری است که آپارتمانها و مجتمه مسکونی بزرگ دارند. راهی که آدمی در موقع استرار از آن استفاده می کند. با استفاده از همین واژه است که ترکیب همچون ضرورت تاریخی و ضرورت اجتماعی ساخته شده است. وقتی آدمی نمی تواند انگیزه اعمال فردی و تحولات اجتماعی را به روشنی درک و فهم کند پای این واجه منحوس را به میان می کشد. واقعا چرا من در گوران؟ در مستر اموری قرار گرفتم که در حوزه تخصصم نبودند. آیا در آن سیرش تا تحولات اجتماعی در صدد ساختن جایگاهی برای خودم بودم؟ آیا من سربازی بودم که با پشتکار، جدیت، شهامت و شجاعت به مقام وزیری رسیده بودم؟ یا اسوی بودم که از روی سر بعضیها پریده بودم و خودم را به سرچشمه قدرت نزدیک کرده اما مگر در آن روزها قدرت برای معنا داشت من میخواستم مفید باشم مفید و متعهد همین